در خیابان پرده شب کنار رفته بود. اتاق اتومبیل زیر نور ماه می درخشید. از خودم پرسیدم آیا سراب می بینم یا تأثیر الکل است. روی کاپوت ماشین ضربه زدم تا مطمئن شوم خواب نمیبینم. در حالی که سپر و گلگیر خسارت دیده را نشان میداد گفت: یه روز باید همه اینا را تعمیر کنم. اعتراف کردم رد اتومبیل را از تعمیرگاه پیدا کردم. گفت بیخادین همه به خودتون زحمت دادین سه هفته است که ماشین جلو خونمه من تو میدون لئونگیو زندگی زندگی میکنم شماره دو منطقیه پونزده به این ترتیب از هم خیلی دور نبودیم پورت اورلئان پورت دووانو با کمی شانس میتوانستیم یکدیگر دیگر آنجا ببینیم در آن زمین پشت ساحل اگر این اتفاق میافتاد کارها ساده تر می میشدند. دنیای هر دو ما یکی بود. روی کاپوت ماشین نشستم. حالا اگه میریم منطقه 15، هم منم برسونین این هتلم. نه. گفت امشب باید در آپارتمان سولییر در خیابان آلبر دومون بخوابد و مدتی آنجا بماند تا آپارتمان در غیابش خالی نباشد. سولیر برای سفری تجاری به ژنو و مادرید رفته بود. اگر درست فهمیده باشم، کار شما نگهبانی و شب زندداریه. ممکنه. در سمت راست را باز کرد تا سوار شوم بعد از آن همه روز و شب که به پرس زدن توی محله گذشته بود، این کار به نظر طبیعی می آمد. حتی مطمئن بودم قبلا این لحظه را توی رویاهایم دیدم. ناگهان هوا خیلی سرد شد. سرمای خشکی که چیزهای دروبر من را درخشنده تر و واضحتر می کرد. نور سفید لامپها، ها، قرمزها، قرمز ها، نمای تازه ساختمان ها. در سکوت خیال می کردم صدای قدم های منظم کسی را می که به ما نزدیک می شود. دستم را فشار داد درست مثل آن شب توی ماشین پلیس گفت حالتون بهتره؟ با تابش نور ما میدان تروکادرو پند تر و خالی تر از همیشه به نظر می رسید. رد شدن من از میدان تمام نشدنی بود و این کندی احساس خوبی به من می داد. مطمئن بودم اگر به های خاموش نگاه کنم در تاریکی آبارتمان نفوذ خواهم کرد مثل این بود که بتوانم پرتوهای مادون قرمز و ماورا بنفش را جذب کنم ولی نیازی نبود بی خود زحمت بکشم فقط کافی بود خودم را روی سرازیری خیابانی که آن شب همراه سگ از آن بالا آمده بودم رها کنم گفت منم سعی کردم پیداتون کنم ولی تو در کسی آدرستون رو نداشت پاریس بازار که باید مراقب بود مدمایی مثل ما بالاخره گم میشن بعد از کاخ شایو پیچید دست راست و در امتداد ساختمانهای بزرگی که به ظاهر متروک بودند پیش رفت نمیدانستم توی چه شهری هستم انگار مردمش رفته بودند ولی اصلا اهمیت نداشت دیگر در دنیا تنها نبودم شیب تون تر شده بود و تا سن پایین میرفت خیابان آلوردومون با غطراف آکفاریوم و بنای سفیدش را دیدم جلوه در ساختمان نگه داشت باید بیاین آپارتمانو آپارتمان ببینیم طبقه آخره یه تراس بزرگ داره که از اونجا همه پاریس دیده میشه اگه سولیر یهو یه برگرده؟ هر بار که اسم این شبه را به زبان میآوردم آوردم میگرفت. فقط خاطره مردی با پالتو تیره توی ماشین پلیس، سالن درمانگاه و کافه خیابان ساحلی در ذهنم مانده بود. آیا ارزشش را داشت که در موردش بیشتر بدانم؟ احساسم می‌گفت او از جنس پدرم و تمام کسانی است که در گذشته دور برش می‌دیدم. در مورد این جور آدم‌ها نمی‌شود چیز زیادی فهمید. باید به گزارش‌های پلیس که علیهشان تنظیم شده مراجعه کرد. ولی این گزارش ها که به زبان بسیار دقیق و روشنی نوشته شدند، همه گی زد و نقیزند. پس چه فایده؟ مدتی بود چیزهای زیادی در سر بیچارم غاطی پاتی می شد و این تصادف اتفاق بزرگی برایم بود. نه ترسین. امکان نداره به این زودیا برگرده. اگرم برگرده مرد جنسی نیست. میدونین دوباره زد زیر خنده. خیلی وقت اینجا زندگی میکنه؟ نمیتونم جواب دقیقی بدم انگار داشت با مهربانی دستم میانداخت گفتم اسم سلیر با آدرس خیابان آلبردومون توی کتابچه مشترکان تلفن وجود ندارد گفت جالبه که این همه خودتون رو تو زحمت انداختین تا مطمئن شین در ضمن اسم اصلیش سلیر نیست این اسم همین جوری دم دستی واسه خودش گذاشته اسم واقعی رو می دونین؟ بدون آن که دلیلش رو بدانم این اسم برایم آهنگ ی آشنایی داشت شاید توی دفترچه نشانه های پدرم بود حتی با اسم مراوزکی هم چیزی تو کتابچه تلفن پیدا نمی کنین. به نظرتون این موضوع واقعا اهمیت داره؟ حق داشت دیگر چندان مایل نبودم به کتابجوی تلفن نگاه کنم.